بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الزکات کتاب الزکات تجب الزکات فی خمسه اشياء واجب است زکات در پند چیز و هی از یک المواشی چارپایان لطه گرچه جلوتر خودش چارپایانو مشخص میکنه ولی اگر به جایین انعام یا نعم میگفت برخی شارهین میگند اولاتر بود در هر صورت چون خواستر از مواشیه پس چهار پایان که بعدا مشخصشون میکنه در کدوما؟ و سمنها سمن ها که سمن است. طلا و نقره و ضروع كشفها الكلبتوناي كي قابل الزخيرة حسنت والثمار ميدها الكلبتين رم نامخ هذا قرأت وعروض التجارة وكالها يتجاري فأما المواشي فتبت فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها. أما زكاة درّشار بيان واجب الزكاة در سجز در شار بيان وهي إبرة النس الابل والبقر والغنم يك شتور دو قاف س جسفند وشرط وجودها ستة أشياء. شرائط وجوبة زكاة درينسة چيز. يا در مواشي شش چيز هست. يكي اسلام. دو. الاسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والصوم. بال این پنج چیز یک اسلام دو حریت آزادگی برده نباشد سه ملک تام باشد چهار نصاب به نصاب برسند اون مواشی پنج و بعد از این که به نصاب رسیدند حول ازشون بگذرد مثلا گوسفند نصابش اینه که به چل تا که رسید درش زکات میاد ولی همون روز ته دیگه نمیاد بلکه یک سال بگذرد این سال و زکاوی رو بشمیند حول از اون روزی که به نصاب میرسند یه سال بگذارد که این رو بشمیند و سام چرندگی یعنی بچرند این طور که در طول سال صاحبشون یونجه و علف براشون فراهم کنه که خب این زکات ندارد پس این پنج چیز این, این شیش شرط شرایط از شرایط وجوب این مواشی هست و اما فشی فشيئاني گفت زکات در پنج چیز فرضه یک مواشی دو اثمان اثمان چی هستند دو چیز هستند و اما الاثمانو سمن ها چیزی که به عنوان سمن پرداخت میشه دو چیز هست. یکی ذهب و الفض بله دینار و درهم طلا و نقره وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشیاء و شرط شرطهای واجب بودن زكات در ثمنها پنج چیز است یک الاسلام و اسلام دو والحریة آزادگی سه والملک التام ملکیت تام اونآغا چار والنصاب سمن ها به نصاب برسند و الحول حول هم ازشون بگذارد ملکیت تام مثلا چطوری باشه توضیح کشارهان میارند مثلا میگن دینی که سید بر مکاتب داره مکاتب اون برده یه که جهت آزادیش با صاحبش قرارداد نوشته اون دینی که مال سید هست و برگردن مکاتبه هست درش زکات نیست چون ملکیت تام نیست برده میتونه اسقاطش بکنه اصلا مکاتب اون مالی که در دست خودشه برش زکات واجب نیست سید که خب دیگه به طریق اولا اون مالی که مال سیده و دست مکاتبه برش زکاتی نیست پس اینا پنج تا شرط بودن اسلام، آزادگی، ملکیت تام رسیدن به اون حد نصاب، حد مشخص والحول و گذر رد شدن از اونها یک حول چون اینا رو جداگانه جلوتر بحث خواهد کرد اینجا دیگه ما توضیح نخواهیم داد و اما زروع و فتجب و از زکاة به ثلاثتی شروط اما کشته ها به سه شرط زکات درشون واجب میشه یکا یکونه ممیزرعون هو الادمیون اولا اون کشته اون زرع از اون چیزهای باشه که انسان ها اون رو میکارند از اون بارهای که خود روح هستند در سحرانه باشد بس از اون چیزهای باشد که یزرعون هو الادمیون انسان اون رو میکارن و این یکونه قوتا مدخرند شرط دوم اینه که قوت مدخر باشد قوتی باشد قردنی که قابل ذخیره باشد غذایی که قابل ذخیره باشد و یکول نصابا و اون زرع و اون کشت که با اون دو تا شرط قبلی به نصاب برسد و هو او خمسه اوسق لا قشر عليها نصاب در کشت‌ها كش... گندم و جو خورما و چیزای دیگر چه چی هست البته خورما از سمار هست و مشکلی نیست ولی در نصاب با هم یکی هستن خلاصه پس اون زرح مثل عدس و لوبیا و گندم و این مسائل زرعه ها میگه به و نصاب چه اندازه هست در کشته ها؟ خمسط و او سقن پنج وسق برسد بدون پوست پوست نداشته باشد خب هر وسق شست سا هست هر وسق شست سا هست در نتیجه گفته پنج وسخ برسن تا زکات بیاد یعنی پنج شیش تا سی تا 300 باشن تا زکات درشون بیاد وزنی که امروز در آوردن تقریبا 650 کیلوگرم است یعنی گندم به 650 کیلوگرم برسد تا در اون زکات بیاد پس یک انسانا اون رو بکارن دو قوت مدخر باشد قابل ذخیره باشد سه به نصاب برسد که نصاب در اون پنج وسق و هر وسق و هر وسق شست سا که میشن سی ست سا که در آوردن ششتد و پنجاه رن به دست آوردن این کتابی که هم دست من از تعلیقاتی زده و مختصر عبی شجا این هم ششتد پنجاه کیلو به دست آورده و کتابهای دیگه ای که حتی از مذاهب دیگه ما نگاه انداختیم علمای معاصر البته 650 کیلو اینو برابرد کردند و اما ثمار و اما ثمار ها گفته بود زکات در پنج چیز میاد مواشی بیان شد اثمان بیان شد زرو بیان شد ثمار موندهو اروز تجاری اما سمار اما چارمین چیزی که در زکات میاد و همون سمره هاست میوه ها فتج بزدکات و فیشه این من ها واجب از زکات در دو چیز از میان میوه ها اون وسط مذهب احناف کجا رفت بله. اون البته فقه احناف دیگه بیشتر از فقرا جالب داری میکنه در مذهب امام شافعی رحمه الله در دو ثمره زکاة واجب است. سماره نخل یک سماره نخل که همون خورماست و سماره الكرم و سماره انگور و شرائط وجوب زکاة فيها اربعات و شرائط واجب بودن زکاة در ثمرها هم چهار چیز است. الاسلام والحرية والملك التام والنصاب. بعلم إسلام وعذاديو ملكية التام ونصاب. بنصاب برصد. وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائة المذكورة في الأثمان. بعلم. در اون روز تجاری یا اون کالاهای تجاری یا اون چیزهایی که برای فروش هستند هر چه چی باشد چیزی که برای فروش شد جز اروز تجاریه میگه واجب از زکات در اون با شرائطی که ذکر شد در سمنها در سمنها اگر یادتون باشد پنج شرط آورده بود اسلام و آزادگی و ملکیت تام و نصاب و حول بله خوب زیر بله فصل نصاب زکات ال اب یکی از شرایطی که بیان در برخی امور نصاب بود بحث نصاب بود یعنی اون چیز به نساب برسه در تا درش زکات بیاد. حالا نساب اون چیزایی رو که درشون زکات هست و بیان میکنه از این جای کار به بعد. اولا نساب زکات و یعنی شطر, شطر به چند تا برسد درش زکات هست؟ اگر شخصی یک شطور داشت درش زکات هست خیر باید به نساب برسد. و اول نساب ایبلی خمسون. اولین نساب ها شطر پنجتا تاست. یعنی به تا برسند. تا درش زکات بیاد تا اگه یکی چارت داشته باشد زکاتی هم در کار نیست زکات واجب نیست و فیهاشاتون اولین نصاب شطر تا و در این تا یک گوسفند که یک سال البته داشته باشد اگر گوسفند بود و اگر باز بود هم دو سال پس اولین نصاب شطور شروع میشه از پنجتا که یک گوسفند اونجا حالا من, من هر کجا گفتم گوسفند منظورم هم گوسفند هم باز فرقی نداره پس اولین نصاب شطور از تا است و در اون یک گوسفند زکات داده میشود و فی عشر شاطان از ده شطور دو تا گوسفند زکات داده میشود و فی خمسه تا عشره ثلاث و در تا... تا شطر سه گزفند و فی اشرینه شياه اوشیاه در تا شطور چهار تا گزفند زکات داده می شود. و فی خمسه و و در بیست و پنج شخص باید یک بچه شطور. یک بنت مخاز بده بنت مخاز اون شده ماده مادهی گفته میشه که یک سالش کامل شده و وارد سال دوفم شده پس در 25 تا شطور یک بنت مخاز زکات میدهد و فی 36 بنت لبون در یعنی از 25 تا 35 همین بنت مخازه در وسط دیگه چیزی نیست و در سی و شیشتا بنت لبون میده بنت لبون هم اون شطوره بچه شطوره ماده دو سالش کامل است و وارد سال سوم شده بهش میگن بنت لبون خب فی ستن و اربعین پس از سی و شیشتا پنج همین بنت لبون یعنی بچه شطوره ماده دو ساله ای که وارد سال 7 شده از زکات بردمده. و في این حقه. چهل تا شدند یک حقه میده. اون بچه شوتر ماده که دیگه چهار سالش سه سالش کامل است دو وارد سال چهارم شده است. حقه. و پس در 46 یک حقه میده. تا شست شست و یکتا که شدن جذعه میده جذعه کدومه اون بچه شطر ماده است که چهار سالش تکمیل شده وارد سال پنجم شده و فی مئت و احدا و عشرین ثلاثو بناتی لبونه پس در نوید و یکی ما گفتیم دوتا حقه میده نه در شست و در چل و تا یک حقه میده در چل و تا شستتا شست و یک که شدن جزعه میده اون بچه شتوری است که چهار سالش کامل شده است و وارد سال پنجم شده است حقه سه سالش کامل بود وارد سال, سال چهارم شده بود جزعه چهار سالش تکمیل شده وارد سال پنجم شده است. و فی ست و سبعین بنتالبون شتراک رسیدن به هفته دشیشتا دوتا بنتالبون میده. و فی احدا و تسعین حقتان. پس از هفته دشیش تا نواد نواد یک کشیدن دوتا حقه میده. نوادو یک تا شدن دوتا حقه میده. وفی 121 و احدا وقتی که رسیدن به سد چون تا 120 و بیست همون دو تا حقه هستن از 91 یک تا 120 و بیست همون دو حقه هستن از سد و بیست و یک ستا ثلاث و ل... زکات میده اینجا حساب داشته باشیم تا سد ستا بنت لبون زکات میده از این جای کار بعد حساب آسان تر میشه ثم فی کل اربعین بنت لبون سپس از هر چلتا یک بنت لبون میده و فی کل خمسین حقه و از هر پنجاه تا شطور یک حقه میده از هر پنجاه تا شطور یک حقه میده از سد و بیست 121 به بعد از 90 تا 122 تا حقه میداد از 121 به بعد سه تا بنت لبون از 121 به بعد که گفتیم ستا بنا تلبون میده موقعی که از 40 تا از 121 اضافه تر شدن اضافه بر اون حساب قبلی که گفت یعنی ستاب بنا تلبون هر چلتا اضافه از 121 یک یک میده و در هر پنجه تا یک حقه 121 و بیست و که اضافه شدند خلاص یک بن تلبون میده پنجه تا دیگه که اضافه شدند یک تحقه میده تا آخر که بره فصلون نصاب زکات البقر نصاب زکات گاف چند هست و اول نصاب البقری 30، اول نصاب گاف از سیتا شروع میشه یعنی قبل از سیتا زکاتی نیست و فیها طبیعون سیتا که رسیدن یک طبیع میاد یعنی یک گوساله یک گوساله یک ساله که یک سالش تکمیل شده و وارده یک سالش تکمیل شده و سال دوم دیگه شده که یک سال تکمیل باشه باید پس اولین نصاب گاو از سیتا شروع میشه که سیتا گاو یک ساله یک ساله زکات میده و فی اربعینه مسنتون و اگر چلتا که رسیدن یک مسن نمیده، مسننه اونی هست که دو سال تکمیل داره و على هذا ابدا فقس بر این حساس تا آخرش قیاس بگیر یعنی چی؟ یعنی سیتا طبیع میده یک ساله از چلتا مسن نمیده که همون دو سال هست یعنی اگر شست تا شدند دو تا طبیع میده نوت شدند سه تا طبیع میده هفتاد که شدند هفتاد از یک چل درست شده و از یک سی پس برای سی تا طبیعی میده برای چل تا مسین نمیده اینجوری تا ابد. اگر یکی نوت تا داشت خب نوت سه تا سی هست از هر سی تا ما قبلا گفتیم یک طبیعی پس تا طبیع میده همینجوری تا آخر بره هشتاد دوتا مسنه میده چون هشتاد دوتا پس هفتاد کلن از شست بره هرچی ده تا ده تا میره همینجوری زکات میده شست دو تا دوتا طبیعه هفتاد یک طبیع هست و یک مسنه هشتاد دوتا مسنه هست سه تا طبیع هست صد از, از دو تا سی درست شده دو تا سی میشن شست و یک چل پس دو تا طبیع میده با یک تا مسنده تا همینجوری دهتا دهتا میره حساب اینجوریست و نصاب و نساب فصل و, و زکات الغنم نصاب زکات گوسفند. اول نصاب الغنمی اربعون اولی نصاب گوسفند از چلتا شروع میشه یکی سی و تا گوسفندش زکات ندارن، مگر اینکه صاحبش بخواد، خب من فرق نیکورم. پس <تصفيق> اولین نصاب گوسفند چهل تاست و فیها شاتون جزاء که از این چهل تا گوسفند یک گوسفند جذعه بده. یعنی دارای یک سال منبع، آه. اگر خاست که از میش زکاتو در بیاره جذعتا می اون موقع یک ساله از گوسفند بده اوثنی من المض یا دو ساله از بس بده. پس اولین نصاب گوسفند حالا چی بزش باشه چی میشش فرق نمی کنه از چهل که اگر خاص از این چل تا میش بده یک جعه میده یعنی یک سال و اگر خاص از ما از بده یعنی از بز بده یک سنیه میده همون دو ساله است پس اولین نصاب گوسفند از چند شروع شد از 40 40 تا که رسیدن یکی میده تا چند تا تا 121 و و که شدن اونجا دو تا گوسفند زکات میده پس از 40 تا 120 همین یکی یکی هشتاد داشت دیگه از عقل نمیام بگیم حالا که هشتاد دو برابر چل پس دو تا بده نه از چل تا صد و بیست همین یکیست و فی میعتن و احد و شاتان صد و بیست و یک شدن دو تا گزفند و زکات میده. و فی میعتین و واحدتن ثلاث و شیع در دو و یکی یعنی تا دو تا همون دوتا هستن از 121 تا 20 دو همون دوتا هستن از 201 میشن سه تا گوسفند زکات و في 400 شیاه در 400 تا 4 گوسفند زکات میده ثم فی کل 100 شات از 400 به بعد از هر 100 تا یکی میده این 500 تا شدن 5 تا 600 تا 6 تا 700 تا 7 تا 800 تا 8 تا 900 تا 9 تا بهیشک تا کی تا کی؟ هرچه به فراتر برود